شکایت. سرایدار مطمئنن مدتی بود که انتظار ترلکوفسکی را می‌کشید. چون به محض دیدن او از پشت شیشه اتاقش با دست به ترلکوفسکی علامت داد بعد یکی از پنجره های متحرک را بلند کرد و با صدایی بلندتر از آنچه واقعا لازم بود فریاد زد مسیح ترلکوفسکی سرایدار هیچ و حرف سین بین فه و که را تلفظ نمی کرد. برای همین همیشه ترلکوفسکی را ترلکوفکی صدا می زد. ترلکوفسکی با لبخند دلپذیری به طرف پنجره اتاق سرایدار رفت. سرایدار پرسید شما مادم دیاز را دیدید؟ ترلکوفسکی حتی نمی دانست این مادام دیاز کیست؟ خیر، چطور مگه؟ مهم نیست. خودم بهش میگم که شما برگشتید مادام دیاز میخواد با صحبت کنه درباره چی؟ خودش بهتون میگه پنجره رو محکم به هم کوبید و با این کار عملا به گفتگوی میانشان خاتمه داد سرش را به حالتی که بیشتر نوعی اجازه مرخصی بود تا خداحافظی با تو معنی بالا و پایین داد بعد هم به سراغ غذای رفت که روی آچاق در حال پختن بود و دیگر هیچ توجهی به ترلکوفسکی نکرد. ترلکوفسکی که تا حدی کنجکاویش نسبت به موضوع تحریک شده بود، از پله‌های ساختمان بالا رفت. پالتویش را رو روی تخت انداخت، یک سندلی جلوی پنجره گذاشت و روی آن نشست. حدود نیم ساعت همانجا روی صندلی نشست. نه دست به کار خاصی زد و نه به چیز به خصوصی فکر کرد. فقط یکی دو مورد از بقایای نچندان مهمان روز را که هنوز به یاد داشت در ذهنش مرور کرد تکه‌ای از گفتگوهایی که شنیده بود، رویدادهایی که از اهمیت خاصی برخوردار نبودند و هایی که در مترو یا خیابان دیده بود. بعد از آن دوباره برخاست و بی هدف در اتاقها پرسه زد تا آنکه بالاخره مقابل آینه کوچکی که روی دیوار دستشویی آویزان کرده بود ایستاد. مدتی به قیافه خودش در آینه خیره ماند. سرش را ابتدا به چپ و راست چرخاند و بعد هم بالا گرفت تا فضای خالی و باز سراخهای بینیش را ببیند. بعد خیلی آرام کف دستش را روی صورتش کشید. انگشتایش به یک تار موی زبر و کوچک درست در نوک بینیش برخورد کردند. صورتش را به آینه نزدیک تر کرد تا تار مو را بهتر ببیند. یک تار موی قهوه‌ای از یکی از منافذ بزرگ روی بینیاش بیرون زده بود. به طرف تختخواب خواب رفت و از جیب کتش یک قوطی کبریت درآورد و به دقت دو چوب کبریت را که دارای تیزترین و تمیزترین نک بودند انتخاب کرد. بعد به مقابل آینه برگشت و سعی کرد تا با استفاده از چوب کبرید ها همچون یک موچین موقتی موی روی بینیش را بکند. اما یا چوب کبرید ها از دستش در می‌رفتند. یا نمی تارمو را محکم بگیرد، طوری که همیشه در آخرین لحظه از دستش در می رفت. با این حال، با صبر و حسلهی که به خرج داد، بالاخره موفق شد. تارمویی که در دست داشت، بلندتر از آن بود که فکرش را می کرد. از این کار که خلاص شد، از زور بیکاری کرد به فشار دادن چند جوش سرسیاه روی پیشانیش. اما خیلی زود حسلهش از این کار سر رفت. روی تخت راست کشید و چشمانش را بست اما خوابش نبرد تصمیم گرفت برای خودش داستانی تعریف کند. من بر پشت اسب راهواری سوارم و ده هزار قزاغ خشمگین و شوریده را رهبری می سه روز متوالی صدای آمیز سمع اسبان ما در سراسر استپا تنین انداز شده است. ده هزار اسب سوار دشمن. از مقابل با سرعتی همچون رعد موج زنان در امتداد افق به طرف ما می‌دازند ما حتی یک سانتی متر هم عقب نمی‌نشینیم صدای برخورده دو اردوی سوار نظام را در لحظه تصادف می‌توان از کیلومترها دورتر شنید من تنها کسی هستم که روی زین اسبش باقی میماند. شمشیرم را از غلاف بیرون میکشم و با آن راهم را از میان انبوه مردانی که روی زمین ایستادهاند باز میکنم حتی به خودم زحمت نمیدهم ببینم ضربات شمشیرم بر سر چه کسانی فرود میآیند فقط با مثله کردن اندام دشمنانم به پیش میرانم خیلی زود دشت پر می شود از کوهی از اندام خون آلود. من با مهمیز به پهلوهای اسبم میکوبم و اسب از درد شیهه بلندی میکشد باد همچون کلا خودی کیپ و محکم به سرم فشار می آورد پشت سرم فریادهای شعف انگیز ده هزار قساقط تحت فرمانم را نه پشت سرم صدای من در تاریکی شب در خیابان شهر قدم میزنم صدای قدمهایی از پشت سر توجه مرا به خود جلب می زنی را می بینم که سعی دارد از دست یک ملوان ماست فرار کند. مرد به لباس زن چنگ می زند و لباس پاره می شود زن نیم لخت است خودم را روی مرد جانور ورخوی می و او را با نیروی یورشم به زمین میافکنم. دیگر از جایش بلند نمی شود، زن به طرف من می آید. نه، زن به درون تاریکی می گریزد ساعت شش بعد از ظهر و مترو لب به لب از مسافر پر است در هر ایستگاه مسافران بیشتری سعی می وارد واگن آن شوند تازه واردان مسافرانی را که قبلا سوار مترو شده اند به عقب می رانند و جای خود را با تکیه به درها محکم می کنند من از راه میرسم و قوی فشار را وارد میکنم جمعیت حاضر در واگن به عقب رانده میشوند طوری که بعد از رد شدن از میان دیوارها روی خطوط مترو سقوط میکنند قطاری که در خط کناری از مقابل میآید انبوه مسافرانی را که صدای فریادشان همه جا را گرفته زیر میگیرد و راهشان را در ایستگاه از میان دریایی از خون باز میکند صدای در او را به خودش آورد یک نفر داشت در میزد. بدون شک همان مادام دیاز اسرارآمیز بود. پیر زنی که پشت در آپارتمان و در پاگردی ایستاده بود ظاهر تکان دهندهی داشت. چشمانش دو گوی خون بودند که به سختی قیعی کرده بودند. دهانش یک خط صاف بدون لب بود با دماغی که تقریباً به لبانش می رسید. زن با صدایی بسیار واضح و سریح اعلام کرد باید با شما حرف بزنم. ترلکوفسکی معدبانه گفت بفرمایید تو مادام.» زن با گامهای موزون و استوار به طرف اتاق دوم رفت و نگاهی پنهانی به داخل انداخت. انگار میخواست از تنها بودنشان مطمئن شود. بعد بدون آنکه سرش را بلند کند یک صفحه کاغذ خطدار را به طرف ترلکوفسکی دراز کرد. ترلکوفسکی کاغذ را گرفت و با اولین نگاه متوجه امضاهایی شد که در پایین کاغذ بودند. در سمت دیگر کاغذ متن کوتاهی با خط خوش و جوهر بنفش نوشته شده بود. این برگه در واقع شکایت نامی بود که امضا کنندگان آن رسما از مادام قادریان نامی به علت ایجاد مزاحمت بعد از ساعت ده شب شکایت کرده بودند. پیرزن که دیگر علاقه را به آپارتمان از دست داده بود حالا داشت به نگاه می کرد. و سعی داشت واکنش او را پیش بینی کند. پیرزن گفت خب امضا می کنید؟ ترلکوفسکی خونش به جوش آمده بود. چطور جرأت می چنین چون این چیزی از او بخواهند؟ می مطمئن شوند که او میداند در صورت نافرمانی چه چی چیزی در انتظارش خواهد بود؟ اینطور که پیدا بود برای اینکه او را وادار به اطاعت از خود کنند؟ از هیچ تلاشی مزایقه نداشتند. اول نوبت این زن بود. حالا هر که باشد. بعد هم نوبت به خود او میرسید و اگر حالا شکایت نامه را امضا میکرد، مطمئنا خیلی زود عواقب امتناع از همکاری را میچشید نگاهی به صفحه کاغذ انداخت. امضای موسیوزی به شکل آشکاری در معرض دید بود. ترلکوفسکی بالاخره به زبان آمد. حالا این مادام گادریانکی هست؟ من نمیشناسمش کلمات همچون صوتی خشمگین از دهان پیرزن خارج شدند تنها صدایی که ممکنه بعد از ساعت ده شب بشنوید صدای اون زنه تو اتاقش قدم میزنه لوازم خونه رو جابجا میکنه ظرفهاش و نیمههای شب میشوره و همه رو زابرا میکنه خلاصه زندگی رو برای بقیه مستجرها غیرممکن کرده کی پرسید: منظورتون همون پیر زنی که یک دختر معلول داره؟ اوبددا اینطور نیست اون یک پسر چهارده ساله داره. یک پسر لاعبالی و بیمسئولیت که تمام روز کاری نداره جز اینکه توی اتاق لیلی کنه. مطمئنید منظورم اینه که کاملا اطمینان دارید که یک دختر جوون نداره ؟ البته که مطمئنم از سرایدار بپرسید. تمام ساکنان ساختمان میتونن شهادت بدن. ترلکوفسکی خودش رو جمع و جور کرد و صاف ایستاد بعد گفت متاسفم اما من نمیتونم ای نامه رو امضا کنم. این زن تابعه هیچ مزاحمتی برای من نداشته. من تا حالا حتی صداشو نشنیدم. حالا این زن تو کدوم آپارتمان زندگی میکنه؟ پیرزن از دادن پاسخ ترلکوفسکی تفره رفت و با عصبانیت گفت هر طور میلتونه مجبورتون نمیکنم. اما اگه یک شب شما رو از خواب بیدار کرد، بی خودی دنبال من نگردید، مسئولیتش پای خودتونه. ترلکوفسکی از خواهانه گفت، خودتونو بذاری جای من مادام. مطمئنم شما دلیل کافی برای این کار دارید و به هیچ وجه قصد ندارم صد راه شما بشم، فقط نمیتونم چیزی رو امضا کنم. شاید دلیلی داره که شبها به کارهای خونش میرسه پیرزن با انزجار خندید و گفت دلیل؟ که <تصفيق> اینطور حالا دیگه اون هم برای خودش دلیل داره. اون فقط یک مزاحم و موی دماغه. همیشه آدمهایی پیدا میشن که کاری جز آزار و اذیت دیگرون ندارن. و اگه ما در مقابلشون نیستیم و از حقوقمون دفاع نکنیم، دست آخرین آدم ها از سر و کولمون بالا میرن. ولی من نمیخوام اجازه بدم چون این رفتاری با هم بشه. بنابراین یک راست میرم سراغ کسی که حاضر باشه کمک کنه. اگر شما نمیخواهید کمک کنید، به خودتون مربوطه، اما بعداً برای شکایت پیش من نیایید. اون کاغذ رو هم بدید به خودم. تکه کاغذ گران قیمتش را از دست ترلکوفسکی بیرون کشید و بدون آنکه کلمه برای خداحافظی به زبان بیاورد با گام های سنگین از اتاق بیرون رفت و در را پشت سرش محکم به هم کوبید ترلکوفسکی زیر لب غرید هرومزاده ها چو انتظاری دارن که همه روی زمین دراز بکشن و ادای مرده ها رو در بیارن. لابد به همین هم راضی نمیشم. هاروم ساده‌ها از فرط عصبانیت داشت میلرزید. شام را در رستورانی که معمولا به آنجا میرفت خورد و سعی کرد موضوع را فراموش کند. اما وقتی به آپارتمان برگشت، عصبانیتش حتی ای فروکش نکرده بود. در حالی به خواب رفت که هنوز دندانهایش را از روی خشمی بی حاصل به هم میسایید. شب بعد درست قبل از ساعت ده همان پیر زن قبلی با دختر معلولش در آپارتمان تررکوفسکی را به صدا درآورد. این بار گریه نمیکرد. چشمهایش سرد و مثل سنگ بودند و درخشش شرارت ها را در خود پنهان میکردند. به نظر میرسید که با دیدن تررکوفسکی اندکی از آرامش خودش را به دست آورده است. فریاد زنان گفت: « دیدید موسیو؟ بهتون که گفته بودم اون زن از من شکایت کرده بالاخره کار خودشو کرد حالا من چاره ای ندارم جز اینکه از اینجا برم پیرس زن خبیسه بد جنس همه مستاجرا مستعجرا هم شکایت نامه رو امضا کردند همه جز شما برای همین اومدم ازتون تشکر کنم شما مرد خوبی هستید موسیو دختر مثل شب قبل با دقت به تررکوفسکی خیره شده بود. همینطور هم پیر زن. با چشمهایی که بیش از همیشه درخشندگی خیر ای داشتند. تررکوفسکی که از نگاه آنها کمی عصبی و دست شده بود. زیر لب گفت. من کاری به این کارها ندارم و اصلا دلم نمیخواد درگیری موضوعات بشم. زن سرش را تکان داد. انگار ناگهان کاملا خسته شده باشد نه نه موضوع فقط این نیست شما مرد خوبی هستید میشه اینو تو چشم دید بعد قامتش را راست کرد و خندید اما من هم تلافی کردم سرایدار هم به بدی بغیه است اما من حسابمو با اونم صاف کردم <تصفيق> نگاهی به دور و بر انداخت تا مطمئن شود کس دیگری حرفایش را نمیشنود. بعد صدایش ها تا حد یک زمزم پایین آورد و ادامه داد. تو این مدت، اونقدر به من فشار آوردن که قلنج گرفتم. میدونید من هم به جاش چی کار کردم؟ دختر همچنان به تررکوفسکی خیره مانده بود. تررکوفسکی به نشانه اینکه که نمی شانه هایش را با بیقیدی بالا داد. روی راه پله ها خرابکاری کردم. خنده زننده ای سردا. اما از ماه هایش شرارت میبارید. روی تک تک طبقات از پایین تا بالا. تقصیر <تصفيق> خودشون بود، اونا باعث شدن من قلنج بگیرم. اما با پاگرد آپارتمان شما کاری نداشتم. نمیخواستم باعث زحمت شما بشم. ترلکوفسکی <تصفيق> غرق در وحشت شد. اول به خاطر چیزی که زن تعریف کرد بعد هم با درک اینکه قیبت لکه ها در مقابل آپارتمان او به جای اینکه زحمتش را کمتر کند تنها می توانست دلیل محکم تری بر محکومیت او باشد تررکوفسکی نفس آن پرسید کی که... که این کارو کردید زن با شعفی بسیار نخودی خان همین یکی دو دقیقه پیش خیلی دوست دارم قیافه هاشون و فردا صبح که در آپارتمان باز میکنن ببینم. به خصوص سرایدار. حالا مجبوره تمامش رو تمیز کنه. به هر حال حق همشون همین بود. زن از فرد خوشحالی چند بار دست زد. تررکوزکی می صدای خندی شادمانی زن را در حالی که از پله ها پایین میرفت بشنود. از روی نرده خم خمشد ها تا ببیند حرفهای پیرزن حقیقت دارد یا نه؟ حقیقت داشت. یک باری که یه زرد رنگ به طور زیگزاگ روی راه پله تا پایین ادامه داشت. تکافکی دستهایش را رو روی سرش گذاشت. حالا همه فکر کنند کار من بوده. باید کاری بکنم. مطمئن نمی توانست همین حالا کار پاک کردن پله ها را شروع کند. هر آن ممکن بود توسط یکی از همسایه‌ها ها گیر شود. فکر خودش روی پاگرد آپارتمانش همان کار را بکند اما بلافاصله متوجه شد که این کار فایده ای نخواهد داشت و تفاوت در رنگ و قزتش او را لو خواهد داد. شاید راه حل دیگری هم باشد. در حالی که سعی میکرد حالت توعاش را کنترل کند، تکه مقوع از آپارتمان آورد و از آن برای جمع کردن مقداری از مطفوعی که روی پله‌های طبقه چهارم بود استفاده کرد. قلبش به شدت درون قفسه سیناش می‌تپید و ترس تمام وجودش را گرفته بود. اما چاره‌ای نداشت جز اینکه ادامه دهد. کارش که تمام شد محتویات مقوا را روی پاگرد آپارتمان خودش خالی کرد. بعد با عجله به طرف توالت دوید تا خودش را از شر مقوا خلاص کند. وقتی با آپارتمان خودش برگشت، بیشتر به مردهها شبیه بود تا یک آدم زنده. ساعت زنگدارش را برای صبح خیلی زود تنظیم کرد. به هیچ وجه نمی‌خواست شاهد صحنه ای باشد که منجر به کشف بقایی شب گذشته می‌شد. اما صبح روز بعد، هیچ اثری از آنچه شب قبل روی داده بود دیده نمی‌شد. در عوض بوی تند مواد ضد عفونی کننده از پله‌های چوبی که هنوز نمناک بودند، به مشام میرسید. در کافیان آن طرف خیابان، ترلکوفسکی صبحانه اشک شامل شکلات و دو قطعه نان تست بود خورد. از آنجایی که هنوز زود بود، تصمیم گرفت تا اداره پیاده برود. بدون عجله راه افتاد و مردمی را که از کنارش می‌گذشتند، به دقت زیر نظر گرفت. انبوه چهره‌ها به آرامی و در فاصله‌های زمانی ثابت از کنارش می‌گذشتند. طوری که انگار صاحبان این چهرهها روی یک پیاده روی متحرک و بی پایان سرهایی با چشمهای پف کرده، همچون چشمهای وزق، صورتهای تکید و نگران مردانی سرخورده و ناامید صورتهای گرد و لطیف بچه های و ناهنجار، گردنهای کلافت، با دماغهای شبیه ماهی و دندانهای موشی ترلکوفسکی با چشم های نیمه بسته در خیالش مجسم کرد که همه آنها در واقع یک صورت بیشتر نیستند که همچون ترهای کاریدوسکوپ در حال تغییرند از قرابت این چهره‌ها شگفت‌زده شده بود مریخی، بله همه آنها مریخی بودند اما چون از این بابت شرم‌سار بودند سعی می‌کردند هویتشان را پنهان کنند آنها یک بار برای همیشه با این موضوع کنار آمده بودند که بی تناسبی هولناکشان در واقع عین تناسب و هماهنگی است و زشتی غیرقابل تصورشان هم عین زیبایی. نمیخواستن به پذیرن که در این سیاره بیگانند و طوری رفتار می‌کردند که انگار در خانه خودشان هستند. همانطور که میرفت، چشمش به انعکاس خودش روی شیشه ویترین یک مغازه افتاد. خودش هم هیچ فرقی با آنها نداشت. مو به مو و عینن شبیه حیوله بود. او هم به گونه آنها تعلق داشت، اما به دلیلی نامعلوم از جمع آنها ترد شده بود. به او اعتماد نداشتند، از او اطاعت محض از فرمانهای متناقض و قانونهای مسخرهشان میخواستند. البته فقط برای او مسخره بودند، چون هرگز نمیتوانست به کنه پیچیدگی و زرافتشان پی ببرد. سه مرد جوان سعی کردند تا سر صحبت را با زنی که چند قدم جلوتر از او بود باز کنند. زن جواب کوتاه و نیشداری به آنها داد و به سرعت از آنجا دور شد. مردها از ته دل خندیدند و با سمیمیت به پشت هم زدند. تظاهر به مردانگی و قدرت جنسی یکی از چیزهایی بود که ترلکفسکی را به شدت منزجر می کرد. هرگز علت وجود این غرور کازب را که بعضیها به جسم و قدرت جنسیشان دارند درک نکرده بود آنها مثل خوک خورناس میکشیدند و در لباسهایشان قلت میزدند اما با این حال باز هم خوک بودند چرا خودشان را پنهان میکردند چرا احساس میکردند باید خودشان را بپوشانند در حالی که از هر عملی که مرتکب میشدند بوی پاینتنه و اندامی که با لباس پوشانده بودند میآمد ترلکوسکی با خودش خندید خدا میدونه اگه کسی میتونست فکر منو بخونه و الان پهلوی من راه میرفت چه فکری میکرد تررکوفسکی بارها این سوال را از خودش پرسیده بود گاهی اوقات حتی مسائل پیچیده و بغرنجی را برای حل کردن با این فکر خانه ناشناخته در میان میگذاشت انوا و اقسام چیزهای عجیب و غریب را به اون میگفت گاهی حقیقت را درباره خودش میگفت و در مواقع دیگر به رفتاری زمخت و توهین آمیز بسنده میکرد بعد آنچنان که گویی با تلفن صحبت می کند درست در وسط حرفهایش مکس می کرد تا به پاسخ طرف مقابل گوش دهد. که البته نیازی به گفتنش نیست که هرگز پاسخی دریافت نمی کرد احتمالاً با خودش فکر می کرد یک آدم منحرفم به گمانم علت این طرز تلقی من اینه که هرچی باشه من یک مردم فقط خدا می دونه اگه زن به دنیا اومده بودم چه فکرهایی ممکن بود تو سرم داشته باشم قهقه خنده را سرداد اما بعد تصویر سیماشور روی تخت بیمارستان مقابل چشمایش آمد و خنده روی لبانش منجمد شد